صلى الله محمد وآل محمد. محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الكونين جد الحسن والحسين أبل قاسم المصدر با و حالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاد وقال الحسين عليه السلام إنما خرجت لقلب الإصلاح في أمة جديك السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا جميع و الله السلام على المحسين و على هنيئين المحسين اللهم الله و برکات صلواتی اللهم صلی اللهم محمد تعالی محمد و عجید و عجید همه با هم فرارسیدن ایام اعضای بزرگ خسینی را به محضر مقدس امام عصر علیه السلام و تسلیت عرض می کنیم و همینطور به همه جوامع اسلامی و انسانی مخصوصا به خودمان تعذیت می گوییم از خداوند مهربان امیدواریم که ما و شما را جمله شیعیان و عزاداران حضرتش قرار بدهد عظم الله اجورنا و بمصابنا بالحسین علیه و بالحسين عليه الصلاه و بدون شک یکی از راهها و یکی از عوامل رشد انسان مبارزه با جهل و نادانیست و بهترین راه مبارزه فعالیت‌های های مستمیر و دوامدار فرهنگی تحقیق پجوهش و بررسی زندگانی پیشوایان دینی و رهبران الهیست در این میان هر سال که محرم وارد می شود و افق این ماه بر فراز زمین و زمان وارد می آید قلب های اهل ایمان به تلاتوم در می آید و همه اهل ایمان اعم از زن و مرد در این مسئله یک بار دیگر یاد و خاطره آن بزرگان و آن شهدای های والا مقام اسلامی را در اذهانشان مرور می کنند و در هایشان پیوسته در تلاتون و جنب و جوش و در تقلقل قرار می گیرد که در این حادثه عظیم بررسی می شود دو نقطه اش مهمتر و بیشتر مورد بازدید و بررسی قرار گرفته است یکی از این مسائل مسئله این است که چی انگیزه های باعث شد که نهزت عظیم آشرا با وجود آمد مسئله بعدی که در این میان و در این حادثه و این رویداد بزرگ مورد بررسی و نگریش قرار گرفته است و میگیرد نتایج مسمیر و اثرات بسیار تعجب آور و شگرفی از این واقع عظیم و حادثه و ترجیده عظیم کربلاست بر این اساس قیام آشرا و حادثه آشرا مشعل فروزان است برای امت اسلام در برابر جامعه کفر در برابر استبدادها و ظلمها اون که ما و شما دنبال آن هستیم در محرم امسال با توجه به همین دو نکته علل و انگیزه های وجود قیام و اثرات مفید و پرسمر آشرا بحث بانوان طلبه کابل و جامعه آشرایی را با توجه و با خطاب به بانوان ادامه خواهیم داد و پی خواهیم گرفت و از خداوند مهربان امیدواریم که بتوانیم با پیگیری این بحث عمده و مهم بر با عنوان روش‌شناسی جامعه اساده اشراعی بتوانیم همگان خش را در خط فکری که شهدای کربلا برای خودشان ترسیم کرده بود نزدیک کرده باشیم بتوانیم اون خط فکری رو دنبال کنیم و همچون بانوان آشرا در زمان فعلی و در شهر کابل نقش بازی کنیم. ما و شما میدانیم جایگاه بانوان نقش بانوان در آشرا برجسته بوده است و همگان این را میدانند و این را هم همگی متوجه هستیم. محرم به منزله هویت جامعه شیعی در افغانستان هست. وقت محرم را برداریم مثل این است که جامعه شیعی از بین رفته باشد. صبات جامعه شیعی هویت و شناخت جامعه شیعی در افغانستان وابسته به محرم شده است. باقیونی که همگان در صحبتهایش حتی پیداست در جلسات بزرگ این حرف را می‌زنند کسانی که مردم ازشان می‌ترسان در سخنانشان این حرف پیداست و گفته می‌شود که شما در ماه محرم خود را نمایش ندهید و این معنا که بیانگر وجود شیعیان در افغانستان باشد این معنیش این که محرم هویت جامعه شیعی در افغانستان و در کابل هست با توجه به این مسئله مسئله مهمی که باید به خاطر اون این بحث رو پرداخت چیست وجود مجالس عزاداری و ایجاد مجالیس و اقامه شعائر حسینی و بزرگداشت این شعائر به اندازه خود اسلام مهم هست هر اندازه اسلام مهم هست وجود این ازاداره ها هم اندازه مهم هست چرا؟ چون ما از این مجالیس ایمان خود را میگیریم اسلام خود را میگیریم اعتقادات خود را میگیریم و خط فکری خود را میگیریم. وقت خط فکری ما، باور ما، علم ما از این مجالیس کسب شد رفتار ما هم گونه خواهد شد ما اسلام را با حسین بهتر و زودتر میشناسیم و از مجالیس امام حسین علیه السلام و از مجالیس اهل بیت علیه و سلام ایمان خود را کسب میکنیم و عقاید خش را راسخ میکنیم بر این اساس است که این مجالس مهم هست جمله جل جلالوهو را ما اجازه داریم فقط در مورد اسم خداوند جل عظم به کار ببریم. وقتی نام خدا را بر زبان می آوریم بعد میگیم جل جلالوه این همین جمله و نزدیک به همین جمله در مورد ایمان حسین علیه السلام کار رفته است جملهی که در مورد خداوند متعال بکار میرن است که در مورد مصیبت ایمان حسین علیه السلام کار رفته است ما و شما در زیارت آشرا بعد از این که به حضرت سلام میدهیم در اونجا چونین عرض ارادت میکنیم یا عبد الله، لقد عظمت الرزیتو و جلت و عبومت المصیبتو بک علینا و جمیع اهل الاسلام یا ابو عبد الله این مصیبت و تو خیلی بزرگ هست بر ما و بر همگان اهل اسلام بسیار سنگین و سخت هست ادامش هم عین چیز هست و جلت و عظمت مصیبتو که في السماوات على جمیع اهل السماوات سخت است و بزرگ است و دشوار هست و ناگوار هست مصیبت تو در آسمان در آسمان ها نه یک آسمان در آسمان ها و بر همه اهل آسمان ها این مصیبت سنگینی می کند جل جلالو در مورد خداوند متعال جلت و عظمت در مورد مصیبت امام حسن علیه السلام این هست همه جایگاه و همه اهمیتی که این مجالس دارد و اقامه این مجالس دارد حسین علیه و السلام و ازاداری حسینی این عظمتش به خاطر آن باوجود آمده است که برای خدا انجام میگیرد و برای خدا انجام گرفته است برای این اساس است که مجالس حسینی مجالس اسلام است و مجالس اسلام مجالس خداوند متعال است. و بر این اساس است که خداوند متعال جل جلالوه هست و مصیبت محسن علیه السلام جلت و عظمت هست و این از نیت محسن علیه السلام بیرون می شود حضرت مولا وقتی می خواهد از مدینه بیرون بشود با برادرش محمد حنفیه اونجا که می خواهد خدا حافظی کنه با برادرش می این خرجت لطلب اصلاح برادر محمد حنفی. من برای این بیرون نشدم که خوشگذرانی کنم. من برای این قیام نکردم و بر علیه حکومت وقت ظالم آن زمان قیام نکردم که خوشگذرانی کنم. بلکه برای چی بیرون شدم؟ اینما خرجت لقلب الاصلاح فی امت جدی همانو خارج شدن تا در امت جد خودم اصلاحات بوجود دیا ارید و ان آمور بالمعروف دقت میکنید من میخواهم که امر بمعروف کنم و آنها عن المنکر من میخواهم که نهی از منکر بکنم و اسیر و بی سیرت جدی و ابی و میخواهم بر اساس سیره جدم رسول خدا و پدرم امیرالمؤمنین علیه الصلاۃ سلام رفتار کنم این هست اهداف قیام حسینی و هدف قیام حسینی و از اینجاست که مصیبت امام حسین علیه و بر قدر سنگین میشود که بر جمعی اهل اسلام و بر جمیع اهل آسمان سنگینی می کند ناگواری می کند سختی می کند زمانی که محرم داره در آید و آشرا وارد می شود ملائکه های موظف می شود که یک پیراهن را بر فراز آسمان بی و بر افرازد و از اینجاست که قلبهای اهل ایمان یکباره و غم فرو می و یکباره داغدار می شود هم آسمان ازادار می گردد و هم زمین در ازای فرو می روید این چنین هست بر این اساس بحث ما و شما که بانوان طلبه کابول باشند و ساخت جامعه آشرایی خیلی لازم هست که از این قیام بزرگ رویش شناسی یاد گرفت و در این خط فکری بارید شد. کدام خط فکری؟ کدام جریان عملی؟ همون جریان عملی که مصیبتش بر زمین آسان سنگینی نید. بانوان در کربلا نقش داشتند اما بانوان امروزی ما چه کاری میتوانند انجام بدند و چه کنند و چگونه گونه انجام دهند بنابراین مبحث امسال ما و شما که بانوان طلبه کابل و جامعهسازی آشرایی باشد بحث بسیار مهم هست برای افرادی که میخواهد همچون بانوان کربلا و نقش بازی کند بحث امسال بحث نمونه هست و بحث امده هست برای بانوانی که می خواهد جامع فضای آشورایی و جامعه آشورایی را در کابل ترسیم کند این بحث راه است. ما اگر بی توانیم جامعه آشرایی بسازیم یک مسئله است اگر نتوانیم بسازیم مسئله دیگر هست سخن به میان آمد جامعه سازه آشرایی و اندازه خود مصیبت امام حسین علیه السلام سلام هم اندازه مهم هست چرا؟ چون امام علیه السلام برای همه مسئله قیام فرموده این ما خرجت لقلب الاصلاح فی امت جدی خروج من برای آوردن اصلاحات است برای امر به معروف است قیام من برای نهی از منکر است و امروزه هم بانوان این کار رو باید انجام دهند وقتی چون این کار رو انجام میدهند یا بدون روش شناسی انجام می شود یا با روش شناسی انجام می شود اگر با روش شناسی انجام بشود و بدون روش شناسی یعنی بدون اینکه ما روش رو بشناسیم اصلا انجام نشود بحث روش شناسی انجام اصلاحات یا همه بحث امسال ما و شما که عبارت از بانوان طلبه کابل و جامعه آشناسی است، اهمیتش به اندازه اهمیت آشرا میشه چرا؟ چون اگر ما این رویش رو نشناسیم نمیشود جامعه رو اصلاح کرد وقتی نمیشود هم اندازه که اصلاحات مهمه هم اندازه این بحث مهم میشه چون مقدمه واجب رو گفتن واجب است نماز بدون وضو درست نیست وقت بدون وضو درست نیست مقدمش که وضو باشد هم واجب می شود حج واجب است ولی اگر ما نرویم به سمت حج حج انجام نمیگیرم، گیرم خاطر حج رفتن حج هم واجب می شود این است. ولی اگر بدون روششناسی شناسی قابل انجام باشد ولی دیر انجام شود اهمیت این بحث به اندازه اهمیت عمر انسان است چون اگر ما بر اساس روش شناسی کار رو انجام بدیم کار زودتر انجام میگیرد اگر بدون روش شناسی انجام دهیم کار دیرتر انجام میشه وقتی دیر انجام شد همه اندازه عمر زایه شده پس بنابر بنابراین این بحث به اندازه عمر انسان ارزش پیدا می کند عمر و فرصت که مثل ابر در حال گذر هست عمر و فرصت هایی که ما در روایت داریم میفرماید فلیس فلای سلی ثمن برای عمر شما هیچ چیز ارزش شده نمی یعنی عمر شما از همه چیز ارزشش بالاتر هست الا الجنه مگر یک چیز ارزش عمر شما شده میتونه و اون بهشت است فلا تبيعوها الا بها بنابراین عمر خود فرصت خود و وقت خود را نفروشید مگر اینکه در عوضش بهشت را بیخرید عمره که که اینچنین هست اگر بدون روششناسی به جامعه سازی پرداخته شود زایع می شود پس نباید این عمر را زایع کرد و این فرصت ها را زایع کرد بلکه چی زیباست که آدم با یک کار ساده کار بزرگ را بیتواند رقم بزند نمونه این کار در حضرت زهراست سلام الله ها. حضرت زهرا یک زن است یک بانوس، یک خانوم است یک وصیت کرده که خودش هم اون رو انجام نمیده وصیت رو باید حضرت امیر انجام بده حضرت فرمود یا علمه رو شبانه غسل بده کفن کن هیچ کسی رو هم خبر نکن و قبرم هم باید مخفی باشد این یک وصیت است یک گفتن است کی انجام بده باید حضرت امیر علیه انجام بده ولی با یک همین وصیت حضرت زهرا از زمان خودش تا قاف قیامت زنده هست چرا؟ چون هر کسی که مسلمان باشد یک مرتبه سوال میکنه که قبر دختر پیامبر کجاست وقتی قبرش ناپیداست سوال میکنه چرا ناپیداست و این آخرش منجر میشود به اینکه که حقایق رو بفهمد و بیشناسد این یک کار است توسط یک قانون انجام شده که اونم فقط یک وصیت است عمل هم نیست عملش رو باید کسی دیگر کن. استفاده از عمر معنیش این است استفاده از فرصت معنیش این است حضرت زهران سلام الله علیه ها با این یک وصیت دیگه تو آخر زنده ماند فعلا زنده است. در همه ذهنهای آشفتن و ذهنهای پاک حضرت زهرا سلام الله علیه ها وجود دارد. در ذهنهای پاک حضرتش رو شناختن در ذهنهای آشفتن او ذهنها را تکان میدهد تا اینکه به حقایق بیرسد این است استفاده از فرصت و استفاده از عمر پس بحث امسال ما که انشالله بحث مهم است همه بحث بانوان طلبه کابل و جامعه شناسی آشرایی است جالبی کار انجاز این بحث با این اهمیتش تا هنوز کتابی در این زمینه خودنمایی نمیکند. نمی کند در, این در زمینه بانوان کتاب نوشته شده بحث شده است جایگاه بانوان در آشرا بحث شده است کارکرد بانوان در افغانستان و در آشرا بحث شده است از اهمیت آشرا در افغانستان هم یاد یادآوری شده ولی به این خصوص مخصوصا در مورد بانوان طلبه که آمده بحث کرده باشه چون بحث تاکنون خودنمایی نمی‌کنه لذا بحث امسال ما شما کاملا بحث جدید و بحث ابتکاری و بحث مهم و حیاتی است و قرار هست الله تعالی ما و شما بیتوانیم با بحث امسال یک راه تازه از روزنه و هدایت را بیابیم روزنه مانند که ما و شما را به اون نور عظیم وصل کند و از فرصتها بهترین استفاده ها را برای ما و شما به ارموان بیاورد انشاءالله تعالی این مسائلی که ما تا امسال میخواهیم با آن بپردازیم چند تا سؤال را مطرح کنیم واضح میشود سؤال اصلی که ما و شما از اول محرم تا آخر محرم با آن باید پاسخ بیابیم. این گونه هست چگونه بانوان طلبه کابل جامعه آشورایی رو بی سازند؟ شما به عنوان بانوی از بانوان چگونه می توانید این جامعه رو بیسازید چند تا سؤال فرعی هم وجود دارد جامعه سازه آشرایی توسط بانوان طلبه کابل به چی معنی می تواند باشد جامعه چیست جامعه سازی چیست جامعه آشورایی چیست سوال بعدی که در اینجا وجود دارد اصول حاکم و زیر ساخت جامعه آشورایی چیست و آخرین سوالی هم در این زمینه مطرح بشود چه مشکلات و چالش های در سر راه ساختن جامعه آشورایی توسط طلاب خواهر وجود دارد و چه راهکارهایی توان برای از بین بردن این مشکلات ارائه کرد و این راه ها را به پیش گرفت تا بتوان دختران طلبه و بانوان طلبه یک جامعه نمونه عاشورایی را بیسازد. هر شود اهمیت این جامعه سازی مهم است با اندازه خود آشرا چون آشرا برای همین برپا شده چون قیام حسینی برای همین هست و چیزی زیباست که بانوان امروزی ما همچون بانوان امروز توانند جامعه آشرایی رو بیسازن شما از بانوان آشرای اطلاع دارید خبر دارید که اونها چی کارهایی را نکرده، چه مشکلات را تحمل نشدن شما میدانید اون مادر که سر فرزندش رو به سمت دشمن پس برگردان. شما میدانید که مرگ یک نوزاد چقدر سخت است برای یک مادر او هنگامی که پستان یک مادر شیرش می و متوجه بشود که نوزادش رفته شهید شده است چقدر سخت تمام می شود؟ چقدر سخت تمام می شود که یک خواهر متوجه شود که بعد از چند مدت برادرانش را از دست خواهد داد چقدر سخت است که یک زن متوجه بشود همه هست و بودش و همه مردانش بعد از چند روز زیر پای سوم از ها قرار خواهد گرفت. اینها سخته. سخت هست. ولی قلب هست که میتواند تحمل کند. و رسالت امروز ما و شما هم هست که این گونه باید جامعه را ساخت و برای اسلام فداکاری کرد و جان فشانی کرد از خود گذشت از خانواده گذشت از برادر گذشت از جان و نفس خیش در راه خدا باید گذشت اینجاست که باید برای حضرت زینب آفرین گفت و سر تسلیم فرو آورد و سلامو عرض عدب نموند جلسه امروز خش رو به همین جا با پایان میبریم چند تا شعری را هم بخوانم کن کن قلبان رو به سمت کربلا وارد کنیم که این مسیبت براستی مصیبت بزرگ است صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيِّ حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهَا حُدَّى اللَّهِ خبر رسیده که زینب سوار محمل شد گلوی ناز محیای تقیق قاتل شد خبر رسیده زره بوی شیر می آید برای حنجر خشکیده تیر می آید خبر رسیده که بوی سراب می آید خبر رسیده که دارد روباب می آید خبر رسیده که ذکر خداست بر روی لب خبر رسیده که معجر گره کرده زینب حضرت زینب در ضمن شعری زبان حالش چونین بیان شده است همین که وارد سرزمین کربلا شد ناگاه غمهای بر قلب حضرتش نشست رو کرد به سمت برادرش حسین صدا زد برادر جان اینجا چه سرزمین است همین که وارد این سرزمین شدیم لحظه لحظه دارد تشنگی ما افزون می شود لحظه لحظه دارد غمها ما را فشار می دهد خبر رسیده که محمل رود به راه برد به سوی غ... منام غنشي ششموها صلى الله عليكم يا شهداء الأبرار جميعا رحمت الله وبركاته